جواد میگه من چیزی از اذان مغرب گذشته بود رفتم خدمت آقا رسیدم وارد شدم وقتی وارد شدم دیدم تشت گذاشتن جلو حضرت حضرت داره همینجور خون از ایشون بالا میاد و در تشت ریخته میشه در این شرایط به گفتم که آقا چرا خودتون رو معالجه نمی کنید؟ فرمودن به مازا عال الموت موت قلت انا الله و انا علیه راجعون فهمیدم که دیگه کار تموم شده این کلمه استرجا را به زبان آوردم سپس امام مجتبا علیه السلام به من رو کردند. فرمودن واللهه لقد عهد الينا رسول الله ان هاذ الامر یملکه اسنا عشر اماما من ولد علي و فاطمه ما من ناء الا مسموم او مختول ثم رفعت التست و صلوات الله عليه و اله فرمودن که پیغمبر خدا این پیمان و عهد را به ما رسنده است که این امر و این دین به پایان نمی رسد باید دوازده نفر امام از ولد علی و فاطمه که با خود علی میشن دوازده تا اینها بر این دین حکومت کنن یعنی در برای این دین باشند ما من نا الا مسموم او مقتول و هیچیک از این دوازده تا نیستن مگر اینکه یا کشته میشوند با شمشیر یا مسموم میشوند با زهر سپس ضمن همین صحبت تشت و بالا آوردن حضرت و شروع کردن گریستن همچنان که خون هم از ایشون بالا